قصه های صبحی به روایت فضلالله مختدی ارائه شده از کانال هزار افسان روایتگر پریسا سائدی این داستان روباه و خرس و آدم بینبا یکی بود و یکی نبود مردی بود بیچاره یک روز اوپه زود با دو تا گاوش راه افتاد که بره و زمین رو شوه بزنه وقتی که به جنگل رسید صدای فریاد و زوزه ای شنید رفت تا ببینه چه خبره دید یک خرس بزرگ با یک خرگوش کوچیک دارن با هم حرف میزنن آدم بینوا گفت من هیچ وقتی همچین چیزی ندیده بودم. اونقدر خندید و قهقه قه زد که نزدیک بود بمیره. خرس فریاد کشید. آی آدمی زاد. مگه دیوونه شدی؟ با چه دل و جورتی روبه روی من صدای خندت رو بل کردی؟ من برای این کار تو رو تنبه می کنم. من تو رو بودت تو گاوت رو میخورم. البته آدم بینوا دیگه نخندید و از خیرس خواهش کرد که اون رو نخوره و اگر ناچار بشه که اون رو بخوره تا شب اون مهلت بده که زمین رو شوخ بزنه تا خانواده بیچارش بینون و آزوگه نمونن خیرس گفت خیلی خوب تا شب کاری به کارت ندارم اما شب می خورمت خیرس یه کار خودش رفت و آدم بینوا هم با رنج و قصه زمین رو شغل زد. هرچی فکر کرد نتونست برای خودش یک راه رهایی و نجات پیدا کنه. نزدیک های ظهر شد که روباهی به اون اطراف اومد و فهمید که این آدم بینوا داره قصه میخوره. ازش پرسید که بگو ببینم چی پیش اومد کرده که اینقدر ناراحتی. من نمیتونم به تو کمک کنم؟ آدم بیچاره اون که اتفاق افتاده بود رو به روباه گفت. روباه گفت اینکه چیزی نیست راه حلش خیلی ساده است. خودت زنده میمونی گاوتم آزاری نمیبینم. پوست خیرسم مال تو میشه. بگو ببینم برای کمکی که بهت میکنم تو چی به من میدی؟ آدم بیچاره نمیدونست چی بگه. خودش چیزی نداشت. روبا هم یه چیزی ازش می‌خواست سرانجام راضی شد که نه تا مرغ و یک خروس بگیره آدم بینوا خواهی نخواهی به قولش وفادار موند و این پیمون رو بست نمی‌دونست که از کجا بیاره اما ناچار بود که این پیمون رو ببنده روبا گفت گوش بده آدم بینوا سر شب که خیرس اینجا میاد من زیر درخت مخفی میشم مثل شکارچی ها صدای بوغ در میارم. اگر خیرس از تو پرسید این چه صداییه؟ بگو شکارچی ها هستن که یک ساعت پیش اونها رو دیدم. این صدای بوغ اونهاست که به هم دیگه آگاهی شکار میدن. خیرس میترسه و از تو خواهش میکنه که اون رو مخفی کنی تا شکارچی ها اون رو پیدا نکنند. تو هم رو داخل کیسه چرک میذاری و میگی که تکون نخوره. من میام از تو میپرسم، تو این گونه چیه؟ تو میگی یک کنده درخته. من میگم باور نمی اگه راست میگی تبرت رو به اینجا بزن. این جایی که بالا اومده و سر خرسه. تو هم تبرت رو دست میگیری و چنان به سرش میزنی که فوراً بمیره. آدم بیچار از این پیشنهاد خوشحال شد و همه چیز همونطور شد که باید میشد. خرص گول خورد و آدم بینوا هم با گاوهاش به خونه رفت روباه گفت نگفتم همینطور میشه آدم بینوا یاد بگیر که فکر خوب از زور و بازو بهتره اما من حالا کار دارم باید برم و فردا صبح میام برای گرفتن نه تا مرغ و یک خروس البته باید چاق باشن تو خونه باش وگرنه پشیمون میشی آدم بینوا خرس رو انداخت روی گاری و شاد و خوشحال به خونه رفت. شام خوبی خورد و با آسودگی خوابید. از روباه هم زیاد نترسید، برای اینکه از خود اون یاد گرفته بود که تدبیر خوب از زور زیاد بهتره. صبح زود هنوز آدم بینوا چشمش رو باز نکرده بود که روباه در خونه رو زد و مرغ‌ها و خروس رو خواست. آدم بینوا گفت: در حال لباس پوشیدنم همین الان میام لباسش رو پوشید اما در کوچه رو باز نکرد وسط حیات واسداد و از خودش صدای سگ در آورد روبا گفت آدم میبینه وا این چه صداییه؟ سگ شکاری نباشه؟ گفت درست فهمیدی دوست عزیزم نمیدونم از کجا این دوتا سگ اومدن و زیر تخت خوابیدن بویی رو فهمیدن میخوان بیان بیرون نمیدونید چقدر سخت تونستم رو نگه دارم. روبا گفت: هر طور شده دو دقیقه دیگه نگهدار تا من بود و بم برم. نگهدار نگهدار نگه, دار، نگه دار، مرغ و خروس مال خودت. آدم بینوا در رو باز کرد و دید. روبا دیده نمیشه. بنای خنده رو گذاشت و اگر کس خنده نمورده باشه شاید هنوز هم داره میخنده.